چه ساختمانهای زیبایی در این قسمت میدان بهارستان وجود دارد ظاهرا خیلی قدیمی هستند بله این ساختمان مجلس قدیم ایران است در گذشته جلسات مجلس در اینجا برگزار می شده است این ساختمان یک اثر تاریخی و هنری است باغ پیرامون آن زیباست این بنا و باغ در دوران حکومت قاجاریه احداث شده است مسجد جنوب میدان نیز مربوط به ساختمان مجلس است؟ نه اما این مسجد نیز قدمت زیادی دارد اسم این مسجد و مدرسه چیست؟ مسجد و مدرسه عالی شهید متحری البته اکنون این مدرسه به دانشگاه شهید متحری تبدیل شده است مسجد چه مناره ها و گمبت های زیبایی دارد اما بخشی از تزئینات آن خراب شده است بله این مسجد شاهد برخی حوادث تاریخ معاصر ایران بوده است آیا اکنون از این مسجد استفاده هم می شود؟ بله نمازهای جماعت و سایر مراسم مهم مذهبی در این مکان برگزار می شود. البته در اینجا مدرسه کتابخانه و حوزه علمیه نیز وجود دارد.